بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله قران هذا يبينا فاخرين البعثومين واللعنه على داعي مش معين اللهم اغفر لنا از بس خارج شده زاره ما خروجون از بحث بیش از خود بحث بحث کبائر <laughs> رو سبائر شدیم که آیا این تحسیمه چونم به خاطر اینکه چون استاد متعرض شدن به تحسیل هشارت رو ما وارد نشدن این جهت ما میمه از بحث خارج شدیم و افتاده هم متعرض حالا یک آیه شدیم یا آی این آیه دیگه شد ولتواهش اللهم هم خودشون مراجعه جیه یک آیه رو متعرض شدیم و اون آیه امتشتن بود که بایر و متعرض افتداعا کلمات علمای آمه های مفسرین دیگه را چه به این مطلب شدیم که اقوال چیست در این کتاب قرطبی بله ایشان در زیر آیه مبارک امروز که بحث رو مطرح فرمودن و البته تمایل ایشان ایده بعد ایشان در آخر بحثشون طرمیزان در صفحه 160 تجدید پنجم تفسیر قرطبی در سوره نساء آیه 32 یا 33 را بسم الله حساب بشه نشه وقد اختلفت الناس فی تعدادها و حصرها لاختلاف الاثار فیها ولدی اهول ان قد جا از کیا احادیسو کسیر از اون و حسان البته این صحیح و حسن به اصطلاح خود احسان نه اصطلاح ما اونا اصطلاح دیگه ای دارم که در بحثای اصول قبلن عرض کردیم هم و حسان لم یقصد به الحسن. ولاکن بعضه ها با... یا ولکن بعضه ها با اعمال یا بدون اینا ولکن بعضه ها اکبر من بعضه به نسبت الامایی اکس رو برارا البته این مطلب رو اجمالا حرف بدی نیست بگیم اصولا بعضه روایات که روی سر آمده به عنوان اکبر آمده چون در بعضی از متونش هم از اکبران کباهه که بگیم به همین جهت ما اختلاف روایت حل بکنیم این که مراد آقای قرطبی اینه این من اضافه میکنم توضیح بنده هست ممکنه حل اختلاف رو این بکنیم اون روایاتی که هفت آورده یا نقطه آورده یا از کردیم توی اینها نسبتا اونی که از همش میشه بیشتر قابل قبول باشه که به نظر ما هم میاد که حساس همون بوده اون روایتی بود که امر ابن حضم ادعا کرد پیه به من نوشته این نوشته رو من به یمن بردم دیروز بود از کردم که یک کتابی تازیگه چاپ شده به فارسی ترجمه کردن نامه ها و پیمان های رسول الله ولی یک دکتر به نظر هندیس یا است براد کتاب اصداش بوروز احتمالاً محمد الله به فارسی ترجمه کرد سروش شاک کرد. اصلا منشأش رو دیشب نگاه کردم یه مقداری از این کتاب ابن و رو حتی با متن عربی شده احساس کردم که تاکید دارن روش با متن عربی خورده بعد تعجب اینیتی که رو نقل نکرده همینی که من از کتاب خوب تتبعش خوب خیلی زحمت کشیده دو سه از کتاب ابن حزم رو که پیدا کرده در اونجا آورده اما این یکی که ما الان محل شاهدمون بود و خوندیم از کتاب درر تحکیبه به ایشون یه تیکر بود و هر حال احتمالاً یکی از مناشع شهرت این هفتام هم همین نوشتار خود حضرت باشه و اونجا داره اعظمال کباهه چون نوشتار بیشتر قابل اعتماده وقت بیام راه حل اختلاف رواسته از اینجا حل بکنیم که کبیره مثلا این قدره اما اکبرش این سبعه موقعاته برسته ف شرکو اکبر رضالله کلی و هوا لذیلا یوقفر لنصیل لعف آله علیا زالک و بعد هو علیا صم الله لانهیه تکذیب و القرآن که یا بوله و قوله ولحاب و رحمتی وسعت کلشی و هوا یا لا یوقفر الله فقط هجره باسی و با بوسای رو ایشون بسته محدود کرده. کسی که بگه که من گناهم به مقداری است که خداوند نمی‌بخشه یک باب رحمت واسع الهی رو محدود کرده حالا از اذکار معتقدند ازاله قال خداوند اینکه الله لو تعالی انه لا روح الله الا للقوم الکافون و بعده علقنوت قال الله تعالی من یغنوت من رحمتی الا الظالم و بعده الانم من ذکر الله انسان ایمان بشه از مکره الهی و اینکه خداوند خداونده اعمال ما رو به خود ما بر میگردونه های ما رو به خود ما بر میگردونه فیسترسل و فیلمعاسی یسترسل رها میشه اصطلاح استرسال خودشه ویل میکنه معاسی رو انجام میده و یتکل علا رحمت الله من غیر عمله قال الله تعالی اف امنو مکر الله فلا یعمنو مکر الله الگوم الخاسرون البته این این استدلال به آیات مبارکه در باب کبائر تو روایت ما هم آمده حالا من اینجا خوندم یه تو روایت ما اشاره میکنم دیگه نمی‌خونم و قال تعالی و رضاکم غناکم الذی غننتم درکم اردا قم فاس رضا ولی مریه شما رو از بین بر تصاحت من الخاصین و او الکله البته این کلمات ایشان این درجات به این مقدار در روایت نه آمده است خودیشان خودشان، لان فیه اذها النفوس و اعدام الوجود و بعد فيه قطع فیه والزنا فيه و الزنا فیه اختلاف الانصاب بالمياه و فيه فیه ذهاب العقل الذي هو مناصب التكليف و ترک الصلاة و الازام فیه اظهار شعار الاسلام و شهادت الزور فیها ها و دماغ و فروژ و الانوال الاغیر الالفم ماهو بیین و زرن حالا من تمام بحث کن دیم برای همین خود صاحب کتاب تفسیر و مرتبی مبناش در باب کبیره اینه دقیق کردیم معیار در کبیره هر عملی که آثار خیلی واضح بیین و برهن آثار واضح و روشن و اون آثار آثار بسیار مهم مثل قطع نسل مثل اختلاط انصاب مثل اضحاب وجود اعدام وجود یعنی آثار بسیار واضح و روشن و ضررهای بسیار بزرگ و مهم ظاهرا خود مبنای صاحب کتاب پرتبی در باب کبائل اینه فکل لذنبه عن الله شرع او تعهد علی بن اقام و شدده او عن و ورر من فی الوجود کما ذکرنا فهو کبیرت او چنین هر گناهی که اشاره تاکید داره تشدید داره در عذابش یا آثارش خیلی سخته کبیرت و ما اداهس خیرت فهاذا به بسلك حال الباب که رغب در اینجا این قاعده کلی است این یک قاعده کلی است که باب رو جمع وجور میکنه قاعده قاعده شامله است برای باب و یکی از بتویی از تاثیر دارد این ضابط کلی و رابطه کلی اینه که هر کل ذنبه شارع حرمه تعده علی تعده علی او علم و رار او فی الوجود این هم یک خلاصه ای که ایشان در این مطلب دارن یک بحثی هم من را به بدونت خیلی کن محترم کبیرم دارم بیرد تو بحث کبیره نیست اما حالا بخواییم بخونیم خیلی طول میکشه و دور میشه. از کنم که خب توضیحاتش داده شد که اده هستن تو این مسائل دنبال آثار و روایات هم مثلا روایاتی که از صحابه نفت شده روایاتی که از رسول الله ن اجمالا تا اینجا روشن شد این مقداری که از کلمات خود پورتویس به بعضی از صحابه مثل عبد الله عباس نسبت داده شده که کل ذنبن کبیرو لکن محمد نسبت داده شده که کبار را جدا کرده اما معلوم میشه اونی که مشکل در کبیر و داشته در حقیقت بیشتر بعدها اصولیون بوده مفسرین و محدثین هم اضافه بکنیم و فوقها انقسام سقیره و کبیره رو قبول داشتن اصولیین روی قوائد اصولی می گفتن گناه گناه هیچ فرقی نمی کنه اگر بیدیم اوبر درشنیست مکفر از قطعه هم خب این با گناه بودن نمی سازن. اصلا با وجوب نمی سازن. لذا اشکالی که بعد مطرح شده اشکال بعدی و الا در این سطائفه یعنی مفسرین و فواها و محدثین مشهور همین تفسیری به سریره و کبیره است و از زمان خود صحابه هم معیار صغیر و کبیره اختلاف بوده معیار معروف ترش ما او الله علیه ال این میار معروف ترش یک معیارم بوده که در خود قرآن تشدید شده در روایه اینم بوده یک هم که نسبتا زیاد در یعنی آمند در کمهان رو به عبدالله عبدالله مسعود نسبت شد و از بیشتر از خود عبدالله عبدالله مسعود باشه خود اون چه که در سوره نسا از اول سوره تا این آیه این گناه که در اینجا آمند لکن از عباراتی رو که مثل قرطوی داره و میتونیم این عبار ما می توانیم یک دیگری هم بفهمیم بگیم این اصلا نکنه که یک امر عرفی هم باشه تهبدی نباشه همونطور که ایشون مثلا میخواد در آخر تفسیری که بگه اینطوره. مثلا ایشون میگه هر چیزی که ما نگاه کنیم داره گناهی است آثار بسیار بزرگی داریم این بیره باشه در هر گناهی که آثارش فوق غلق عاده بزرگی حالا ما غیر از این معیارهایی که ای دو تا معیار هم میتونیم اضافه بکنیم به این معیاره که ایشون یک معیار همونی هست که ما اون روز عرض کردیم ما میگیم هر گناه یک محور خودش رو داره خصوصاً اساساً میگیم فعلی هر دور هر گناه محور هر سه آسی هر سه جزا دنیوی و اخروی و برزخی ما سه تاش کردیم دیگه آسی که برایش اون طرف دنیوی و برزخی و اخروی گفتید برای دنیویش بگیم ترتوب برای برزخی شوگیم تجسوم برای اون اخریبه شوگیم تحقق تحقق و اخرای. تجسم تجسوم برزخی و ترتب دنیاوی این اصطلاحات رو عوض به خاطر نکاتی که واضحه این شد هست اون خدمتون که دو تا نکته هم میشه اضافه کرد به این مطلب البته یه نکته دیگه در اینجا مخصوصا اون آیون حسولینی که اصرار داشتن که گناه وقت اونا می آمدن آیه مبارکیه این الله لا یقفه رو انیوش رکبه و یقفه رو مادون داره که لمن یشا این یقفه رو مادون داره که لمن یشا رو می به سوائر و لذا آمونم بحث اینجوری مثل کردن فعای سوائر قطعن مکفراتن که ظاهر این آیه است مکفران کم سیاده یا سقائر علمشیعن یمکن انتو کفر یمکن ان لا تو کفر اون آیت و یخفر و مادون کل من یشا پس اینا آمدن گفتن بله نکفر انکم سیعات کن لیکن انشاء, انشاء الله. این پس یک نزا دیگر هم در اینجا در حقیقت روشن شد یه نزا اون خود آیه بود, بود. یه نزا هم رو اون آیه بود و یخفر و مادونه داره که لمنیشا مراده از مادون داره که چیه اینا میگفتن یخفر و, و مادونه داره که ای سرائه ای سیعات و یخفر و سیعات لمنیشا ولذا بحث اینطور شد همتشتن رو کباه رما تنهونه نکفر آنکه صیاد کم نکافر قطعاً این کسانی ای که تقسیم وارده نکافر ادا نشاط این کسانی ای که تقسیم قائل نبوده. آیشان تو جم به نمط آیش چطور شد؟ این تجتنوب کبار ارماتونه هن آن نکافر نکافر قطعاً اگر بگویم نکافر قطعاً یعنی تقسیم قائلین که و خبیذه اما اگر مثلا نکفر من یشا من گفتن لمن نشا جف با اون آیه می کردن وقت که الله لا یغفر ان یوشک که و یک سر مادون که لمن یشا مادون که این پس سغائر قطعا مکفرات نیستن ادار شاه مکفرات هم اما کسانی که قایل به تفسیر بودن تفسیر سنایی میگفتن نه سغائر قطعا مکفرات فرقه پس این هم تو خود تفسیر، این آیه بحث هم به زده ها اون آیه دیگه این در زندتون باشه چون بعد به درد ما از چون که ما دو تا بهبره دیگه هم دو تا نکته دیگه هم میتونیم اضافه کنیم غیر از این نکته اولا این نکته ها بر این است که بگیم درک کبائر اصولا یک مطلب عرفیه و این که در روایات از پیغمبر آمده برای تأکید بر مثلا در اول اعزمان کبائر همون که نوشتار حضرت بود نوشته حضرت بود اعزمان کبائر پس اصل ادراک کبائر و است اون رو که اشاره بران کرده ادراک مثل مثلا آیه حدیثه اون براست لؤتم مکار و اخلاق اشاره است که مکار اخلاق در فطرت افعال هست فقط عکس افعال مکار و اخلاق اجمالی است من رو تکوین میکنن یعنی تشکیل میکنن حدود اون رو مثلا کز قبیحه این در فطرت انسانه اما خب ممکن در بعضی موارد قبیه نباشه این که این حد دو حدود مکارن اخلاق رو معین میکنن محدود میکنن ما حتی افتومان در مراد از تصمیم آثار جزایی برش بار میکنیم که اگر فلان کار حرام رو انجام داد فلان اثر داشته باشه و دیگر من نیمخواه میشه این بحث تصمیم که مراد از قطم چیه این تصمیم چه انهای مختلف تصور میشه وازش میشه ببین پس اصل اساس مکارن اخلاق از این روید در ک وعصد در اوترمه من الاخلاق یا معالی الاخلاق یا اعالی یا معالی من ترموش کنم رو به این کانفیت دارم در اون قشم هم زیباست نه عالی اخلاق و معالی اخلاق اون هم متنقشنگی پس بنابراین خوب دقت کنید پس بگیم که بحث کبائر و سبائر یک امر عرفی است و این امر عرفی به لحاظ مهورهای مختلفی که گناه درش تصویر میشه اصلاح دو این دستورات خودشیم به دو به دو دستورات دوم بنرسه گناهان در محور خودشیم گناهی است که اساس بقیه اساس نیستن منجر به اون میشه اونی که اساس اون گناهان کبیره اون بقیه بانوان صغیره فرض کنید مثلا من با مثال قانون گذاشتن که با شرکت های مثلا خارجی رابطه اقتصادی نداشته باشید من با مثال مثلا که شرکتی دشمنه من با مثال حالا یک کسی با یک شرکت خارجی رابطه اختیز بیدا کرد مهرمانه و بعداً منصول لیکن فرض به همون دشمن کشور همون دشمن حمله کرد و این شخص در میکنان جنگ با دشمن صبر کرد و عقب نشینی نکرد و موفق شد و دشمن هم وارد خب اگر بگن آقا این آقا یک عمل اقتصادی قلطی انجام داده با اینا میگن بله انجام داد اما چون در جنگ و در مقابل با اونها مقاومت کرد فعلا اون رو چیدی نمیده حالا اون میشه اما اگر عکس این باشه کار اقتصادی نکنه تو جنب فرار کرد دشمن کشور رو گره نمیان بگن مثلا مثلا اون یکی رو انجام نداره. اون مهم نیست اونی به نظر اونها مهمه همون دیگه در روایات اماده فرار از زن وقتی که دشمن حجوم میکنه در مقابل اون فرار کردن این بزرگ این ز این چون نابود میکنه کشور رو اون به حد نابودیه اما اگر فرض کنه ارتباط اقتصادی داشت. معامله کرد درسته اون هم مزرده نیست میخوام بگم مزرد نیست اون هم گناهه نیم بگم گناه نیست لیکن این رو اغلا یک امر طبیعی میدونن میگن درسته این شخص کار بدی کرد لیکن چون تو مرحله جنگ ابلابلا انحسن ها و مقاومت بسیار عادی کرد و دشمن موفق نشد اون رو فعلا کشف کوشی میکنیم این رو کفر انکون سیاهات کنیم یعنی این این تشتنه رو کبائر ماتون ها نهن نکفر انکن سیعات کن این سیئات مطلقی که سیئه نیست وقتی بگیم مثلا توی مسئله خانواده اونی که از همه مهمتر گناه اساسی زناست اما مثلا نگاه کردن به زن اونم گناهه گناه بودن اینها هم غالبا شو مودی خدای نکرد استمرار استمرار پیدا کنه به زنا میشه لذا بعید نیست که محور رو یعنی موضوع رو در باب تقسیم اینجوری قرار بدیم تقف کنیم بگیم هر چیزی که در محور خودش اساس اصلا قتل نفس خب اگه شما با چاگو بزنید این دستی که رو زخم بکن خب این هم بده فیلا شکای گناهه اما این غیر از نیست که گردنش رو کنیم ببینید این دوتا با همدیگه خیلی فرق کنن نیو بگیم اون یکی قابل قبوله این بحث اینطوری بشه و لذا ممکن است در باب زرد هم قائل بشیم که حتی ترامت داره یا زندان داره اما اونی که اعظم کبائره عبادل قفل نست که در روایت داره در بعض روایات هم اعظم کبائر علی اشراق قتل نست بعد از اشراق بله قفل نست آمد پس بگیم معیار در سغیره و کبیره در حقیقت اینه و اون مسئله یا آتش یا آتش یا توقع بر برعضاب یا شدت عضاب یا تشرید عضاب اینها همه نکته در حقیقت راجع به اینه نکته اساسیش این نکته است. و اون نکته اینه که این عمل مثلا بنیاد خانواده را از بین میگنه فراغ از کشور رو نابود میکنه دقت بکنیم اما اگر فرسون با یه شرکتی که ممنوع بود معاملت اقتصادی کرد میشه اون رو یک کاری کرد، مملکت رو کلن از ده. اما فرار از در مملکت رو نابود میکنه میشه این رو بگیم یک مفهوم است که اصلش مفهوم است، و در روایات تأکید روایات بین که ما او عدالله علیه نا و ما شابه برای همون اتمام مکار اخلاقه یعنی مطلب فطری بوده وجدانی بوده اون رو آمدن تحدید کرده. روایات آمده تحدید کرده که دقیقا گناهی که کبائرا اینا هستن. گناهی الان ارزش. اجازه رو هم این یک مهره میشه قرار داد که بگیم مثلا مجموعه روایت ها با همین جمع بکنیم. یه مهره دیگر میشه قرار داد به اون که بگیم اصولاً در تفسیر قرآنی اساس همه گناهان شرکه حتی شریکی محور عبادی داره در مرحله عبادت انسان شرکی به خدا داشه که یک عنوان عام یک مرحله عملی هم داره یعنی اگر ما دقت بکنیم توی اعمالی که انسان انجام میده گناهانی که انجام میده اساس اونها بر شرکه مثلا فرض بنام اصل زنا میکنه چرا خب خدا هم نکاح رو قرار میده راه حلال قرار فرض که مثلا به این که دوزنی میکنه خداوند کارو کرد ساید راه را حلال قرار بکنه این در حقیقت اگر خوب دقیقه میکنه یه نهره تجلی شرک در زندگی عملی انسانه میخواد همراه حلال حرام رو هم انجام بده اگه دقت بشه در تمام این مواردی که گناهان هست در حقیقت این گناهان منشأ این نهر شرکه یعنی این نهره حلال مباه درست صحیح فطری واقعی وجود داره انسان به از اون راه نره و بره به راهی که غیر صحیح توی این جزء روایات بسیار معروفی در حجته تول بداخلی مطلب دقیبیست این ساخن عجیب پیغمبر حکم فرموند که جبرهی الان پشت سر منه به من میگه خداوند برای هر کسی ایک رزق مقدر کنم از همون راه های حلال اون رزق رو به دست بیارن اما اگر از راه حرام رفتین اون رزق حلالتون کم میشه. قصده من رسقیل الان فهج ملوفه جمیل یعنی زیبا راه درست رو راه صحیح رو برید. اگر بنا شد از راه غیر صحیح برید همون مقدر صحیح هم کم میشه پس که کسی رو کردیم مقدرش این باشه سال سلقون بکنه هشتات میگون خطابش برسنه. فقط فرسین در 20 سالگی بره تون 80 از بامل دستی خب میگنش اعدامش این تمام اون 80 سال کباب میشه اون مبلغی که برا بوده بهش درسه این بخواد از راه حرام بیاره اون حلال از دست میره قص نرزق اهل حلال, حلال. دقت پس در حقیقت اگر خوب دقت بکنیم گناهان در حقیقت یک نوع شرک عملی است تو قرآن و تو اصول انبیاء الهی به اجمعنه چون تاکید بر جانب توحیده این دوتا رو خیلی ترکیب شده یکی شرک اووارددی این اکبر توانوا قرار داده شده. این شرک اووادی تجلی پیدا میکنه در گناه ها که میشه شرک عملی. اون اینطوری بگیم عددی از گناه ها شرک شرکه عملین مثل زنا مثل لات مثلجه الله مثل, مثل دزدی مثل خفی نسل مثل فرار اینا مستقیما شرک عملی هم. اما ازدهی از گناه ها مستقیمن نیستن اگر ادامه پیدا بکنه منتهی میشه به اون شرک عملی مثل نظر به اجنبیه پس فرق بین زنا و بین نظر به اجنبیه و این که هر دو حرامه و این که هر دو گناهه در این جهته که مثل زنا مصداق واضح شرک عملی است اما ان نورت و بعد النورت توعدی الا کذا قطعی. این اینها منتهی پس بنابراین و نزا هم اساس تمام گناهان شرک عقایدی است یعنی اون ذهنیت اساساً باطل در انسان درست میشه غیر خدا رو تصور میکنه این اصل تمام گناهانه. اون وقت این تجلی پیدا میکنه تو مقام عمل و اینکه ان شرک لذلم عظیم این در هر دو مرحله لذلم عظیم هم تو مرحله عقایدی هم تو مرحله عملی و لذا شاید هم که ادهی از فلاسفه اسلامی مهیار حسنق و عقلی رو به اصطلاح ظلم و عدر گرفتن. بیدید این شرکل از ظلم و نحظیم به ظلم شده. این توی شرک عملی هم ظلمه. فرما میکنه. پس بنابراین ممکنه که نکته اساسی اون محور رو ما اینجوری قرار بدیم. هر گناهی که مستقیما خودش مصداق شرک عملی است این جزء کباید چون تمام این شرک های عملی بر گردن الله لا لایخته و اینه شرکه به اینه شرکه لگارمون هم اون گناه دیگری که مستقیما شرک عملی نیستن لیکن میچشون زمینه برای اون هستن طبعا اون هم حرامه خب اون نظری که حلاله نظر به پس اون مواده حلاله اون سمایی که حلاله سمای مواده حلاله اون هم شرکه. اما اون شرکی که مستقیما شرکه و اصولاً خودش بی نفسه اون به اصطلاح به قول ایشون ریشه عمل رو برمیداره اون رو ما ازش تفسیر بکنیم به گناه کبیره و بقیه رو به اصطلاح تفسیر بکنیم به گناه سریه این راجعه به کلمات عامه. به همین مناسبت ما متعرض روایات خود ما هم بشیم چون دیگر غیر از جدی که از آیات و کلمات بود ببینیم در روایات خود ما چه مطلبی وجود داره مرحوم صاحب وسائل در این چاپ مرحوم رنبانی جلد یازده که ابواب جهاده با ادوبه بعد از جهاد عدوه جهاد نفس و همکه جنبه های اخلاقی داره و سلوکی داره متعرض شده البته ایشون بابی رو به با عنوان کبائل قرار داده لکن قبل از این که چون از خریم سال و سال دیگه اخلا می داره که گاهی روایاتی که مقاربه بر خودش باب مستقلی قرار میدون از باب چهل باب وجوب اجتناب یا و زنوب از باب چهل که ایشون در این جلده یازده متعرض شدن باب وجوب اجتناب المعاصید مناسبت هایی داره الان بگم باب وجوب اشتناب شهوات و لذات محرمه باب وجوب اشتناب المحقرات من زنوم این باب هم باب چهل و سه طبعا اینا رو مانی بخونیم چون جای ما نیست باب تحریم کفران نعمت الله باب چل و پنجی که ایشون داره باب چل پنج بعد از اونها و چل شیش باب چل و پنجی که ایشون قراره من بعدش میخوام بعد یه حال کنم. چلپنجه که ایشون قرار داده وجود وجوب اشتناب کبائر و باب چلیشیش باب تعیین کبائر علتی یجیب با اشتنابه ها من خواستم این نکتهی را داریمان ارزم کنم مطلب کتاب شناسی هست. این, این, این طبیعی مرهوم صاحب وسائل این کار برای ایشان این راه ایشان در عبوام داره باب چلیه هفت باب سه حت طوبت منل کبائر باب 48 باب و تحریم اصرار علی زن و وجوب مبادرت به توبه و استقبار. این از اون باب چه تا 48 که مجموعاً 9 باب میشه مجموعاً است که اگر آقایان ملاحظه بفرمایم در رابطه با ما نهنفیه. پس آنچه روایات خیلی زیاده و مجموعه روایاتیه. و چون حضرت و استاد نخونده بودن ما دیاله این اداد شده تبرک هم شده متعرض میشه. از توانی که از باب چههل باب رو بوجیم و چون دباری ها زیادی به احتیاج نموشیم از کتاب جامعه احادیث مخونیم به همین مقدار اکتفا باب روشت ایشون حدیث اول محمد بن یعقوب البته این حدیث محمد بن یعقوب این رباری هاست در اکتفا اصول آورده من در اون بحث فیخیان را از بعضی از این ارحاث هستن در خیل نیست که ابن هم مثلا دیگه علما زرک نکردن این تو بحثش شایی دیگه است نه در فرم حالا برمیخونیم اون مطلب رو برد کنیم توی اصول کافی محمد ابن عبوب و علی ابن ابراهیم اند محمد ابن ایسا از کرده محمد ابن ایسا یختی نیست از اجلانه قابل قبول مشکل نداره از کرده روایات علی ابن ابراهیم از محمد ابن ایسا زیاده شاید در پنج مورد یا شیش موردش انعبیه داره و ان که ظاهرن ثابتی نیست نه محمد بن ایسا مستمیم و از کردیم تا که شواهد ما دلوک میکنه محروم محمد بن ایسا به قوم آمده بوده چون علی بن الراهیم ما دلیل نداریم به کوفه یا بغدار رفته باشه شواهد داری خیامن اما محمد بن ایسا ابن او معروف، یقینی معروف یونس یونوس یونوس اب ان ابن ان از کلم کلارن و مرارن و تکرارن این روایت اصلاسا از بن عبد الرحمنه که به اصلاح محمد محمده میسا نسخه یختنی که قومی ها رو حساس بودن قبول نداشتن قالبا و به عکس قومی ها مرحوم کلینی قبول دارن بد نیست اصلاحا شواهد محیبشه مشکل نداره اشکالاتی شده اشکالاتی قابل که بحثش اینجا نیست بله نکته اساسی این است که آثار یونوس خیلی آثار مخصوصیه رسابه. خیلی محقه خیلی واضحه اسانیدش مطرونش خودشم مرد مولایی خیلی هم معتقده به شواهد کتاب و سنته در مون یونوس ما که آثاری هم در حدیثیشون داره ایشون این حدیث نرموندن قال سمعه تویهور و من یک تل حکمه فقط او تیه خیلی را حکمت اصطلاح عبارت از احکام عرض احکام شیع این است که انیت که الانسان به شیعه حتی لا یبقافیه خللان کاری رو جوری انجام داریم که یک نقطه واحد توش خلل نباشه پس ساختمان رو جوری میسازیم که یک خلل نباشه یک آجر زریب کار گداشته داشته یک گرچ حراب جان گداشته داشته اگر این طور بشه این اصلا اینا معتقدن که عمل وقتی درش خللی بود اون خلل منتقی بیمیشه که اون عمل ناقص بشه و از بین بره اون ساخت با اون رو نکنه طولانی نشه و من یکتر حکمه یعنی اساس کار اینه که انسان هر کار رو با تحکام و استحکام با دقت به حیثی که هیچ نقطه واحده هی هم حتی توی شرابی نداشته باشه. و انصال کنم سر اینکه الان مثلا سرعت و پیگیری که از غرب یا میارن یا حتی از ژاپن یا از غرب از آسیو خودمون انصافا این عمل واقعی رو این آیه کردن واقعا حکیمانه انجه حکیمانه ببین نه اینکه حکیمانه فلسفه بونه باشه حکیمانه به این معنا یعنی واقعا هم همینه فرما یه تقلید حکمت از اون که خیران کثیره هر کسی که در بارش احکام داشته باشه واقعا منشأ خیره کثیر در زمینه و این روایت رو سو... خیلی عجیب چون یونس هم نعره کرده قبولشون کنه هم خوبیش مشکل نداره آل معرف خل امام اصل حکمت و عرفت امام خیلی نتیف مناش وجتناگل کبار علیتی اوعدالله علیه ها انا اگر بخواهیم عبارت یونس رو بهتر به فهم گفتو رفت کل اشیاء و ازداده ها دیروز عبارت خوندیم از اهل سنت قرطبی اوتوبی اوتوبی و اداء الفراائض و اجتناب الكبائر نخوند اداء ببینید می‌کنه که نه امام فرمون معرفت اصل امام اجتناب چون اون اداء الفراائض تو خود اجتناب الكبائر هستی اگر نماز نخوند خود ترک نماز جزء کبائر ما دیو در عبارت اهل سنت خوندیم اداء الفراائض بود افیان الفراائض بود اجتناب و کبایر برو خوندیم بیدیم چقدر اینه عبارت لطیفه میگه شما دیگه نمیخواد خواهد اداال بیاریم چون وقتی گفتین اجتناب و کبایر چون ترکل فراعزه روزه کبایره تو خود اجتناب و خوابیده خابیده اداال فراعز اون چیزی که باید درش اثر گذاشت که حقیقت اون امر هست محرفت امام آل علیه السلام معرف طور حدیث صحیح کاامونلا سعیید و شنا وال کواقع وقت نقطش همون تفثیر عی او جو لاغاهره ها ان حالا چون وقتی نیست فردگ ما اشتشی می خوم شده بهتمما میشه اینقدر اجمااً ارکنن در مجموعه های که اینجا در وسایل آماده فعلن چون مسترک که نگاه نکردم جای دیگه نگاه نکن توی مجموعانه روایات م که در وسایل والن تمام این حوابه، از که ما نه باب نگاه کردم در مجموعه اینها نه باب یا باب مجموعه این نگاه کردن توی این مجموعه ای این روایات فقط او جلاله علیه هنگه این نقطه میخوام هران به شما ارزو کنم ما تفسیر دیگری از کبایر در روایات ما نیاماده کنید در رواست سنده هایف میدونم بخیر وخیر چند تا قب اما توی این روایاتی که توی وسائل فیلم هست با قطع نظر است که خوانی یک نگاه نکردم توی یه فقط و فقط این آمده رگاهت دیگری که ما در اینجا داریم روزی شما دو ادتون من اصحاب ران احمد احمدر محمد از کلامی احمد بن محمد اشعری که به بردا به کوفه رفته ان ابن فضل از دست نگوستی بخونی هکتکازیتون بشه ابن خزال مطلق در کتاب کافی پدر حسن بن علی ابن خزال مطلق در کتاب تهذیب اونجایی که ابتدا به اسمش می کنه تهذیب جایی جای اجزاء به اسم ابن خزال ابن خزال مصلح در کتاب تهذیب که ابتدا به اسمش می کنه پسر بن حسن این دو تا با هم فرق داره علاوه حال ابن فضلان پدر فوق العاده بزرگوار و تجربه‌دار آن عبی جمیله، این عبی جمیله مفضل نصال تضعیف شده انصافا تضعیف شد یا که بعد از دیگه باز من مراجعه های دومتر و سمتر کردی اون اونقدر میشه قبول کردی این رواستش قابل تخریج هست اونطور نیست که به کلی رد بکنی مخصوم اینو فضال پلن نهبو کرده که فوق الاده هست ازا قابل قبوله عمل خلبی فقط حلوی و تشخیص دلیل الان خیلی مشکل چون چند نفرند که همیشون هم سرند یکی محمد حلویست یکی عبیدالله برادر هم هستند هم عبی عبدالله علیه السلام حدیث به لحاظ زاینی مشکل سندی داره اما از لحظه فهرستی قابل تصیح هست از کتاب ابن فضال پدره محسن شیخ انصاری بگیه امام فرمود خودون ماره و تبرقون قاعده امام تعبوت فرمودن برها با قطع نظر از اون رباطه خودماره بود انصافاً خود من هم وجداناً به اینجار است نمیگم. نمیم انصافت رلایات ابن فضاله پدر فوق العاده است از رابطه پسر هم به مراتب ده و حق در همینه که مرهوم احمد اشعری اینها رو سبت و کرد و به غم بود انصافاً نه ما سرد این رو وجداناً احرز میکنم نه تحبودم اون رباطه خودماره هم هست کنم سنگه روش آن عبید الله علیہ السلام فرمود اللہ عزوجل هم نه نو, نو و نو آل دیگه خیلی واضحه حدیث شماری سه این حدیث نسبتا مفصلیه من عدت و من اصحاب نه احمد ابن محمد ابن خالد برقی تن محمد ابن جندت الان تو ذهنم نیست که ایشون کیه به نظرم میاد واضح نباشه احتمال بیدن از افرادی بودن که یا حالا اصلشون بسره بوده قومانه و قوم بوده بسره رابط از بین برقی و بین نیراث بسره هنه عبداللهه نه عبدالرحمن حسن این عبدالله الله نذر الرحمن عثم خیلی شده شدیدن من چند دفعه عرض کردم احادیث کلیا خود من مرحوم شیخ بهایی چیزا جمیل کلی جلیل جلیل یک قالوا احادیث ما اضافه کردیم توی علمای بحث ما کسی رو به اندازه این شخص کذاب ننوشتن عبدالله الله نذر الرحمن عثم و من احادیثش در زیاد نشده که این عبدالله در میان اصحاب بسری ما کسی به این شده بهش حمله نشده و در اصحاب کوفی ما هم کسی مثل ابو سمینه محمد علی سیردی و حمله نشده این دو... محمد, بن حبیب, نمیشه. محمد بن حبیب احتمال داره نمیشونسیم الان الان روشن نشد در اما انا عبدالله ابن موسکان عبدالله از هر از کردم اینا چون خط برو بودن هم از هم عشنا هم نبیده از عبدالله ابن موسکان انا عبدالله, هم. هم. هم عبدالله, انا عبدالله زبان نبنی نبنی بکنه. علم خود ایشان بیشتر از خط بصرا بصری ها نقل میکنه حالا اینجا چطور شد رفت به کوفهشون چون عبدالله از خط کوفه است به هر حال این روایت در کتاب صدوق اینجوری آمده از صدوق محمد بن حسن یعنی ابن الغریب ان صفار ان عباس بن معروف از محمد انا العسا این هم مشکل داره. اما اصلا من مشکل اصلا ترداشت محروضه. که خیلی عجیب عباسه نروس خیلی دو تا خیلی دوتا با همگه عوض شدن و باز مرموم خود کلینی این تو من اصحاب نه، نحن برقیه این ابن فزان این ابن موسخان مثله اون. این هم به نظر من سهر بایه در کافی آمده گیر داره با معلومات رجالی و طبقاتی و تاریخی و ما نمی سازیم. تو نه از کلم کرارم این که برقی پسر به کوف رفته باشه فی شما روشن نیست بنظرم یه خرابی داره احمد ما اگر کتاب اصول کافی خدمتون هست که این نگاه کنه اگر همین طوری که این گیر داره گیر احمد ابن محمد ابن ایسا از ابن فضاله احمد اشعری نه احمد برقی چون تصریح کرده احمد محمد ابن خالد احمد برقی احمد برقی این که ایشون از علم فضال تدر نغیر کنه پیش ما خیلی روشن نیست بله احمد اشعری نقل میکنه آه،, آه این درسته بله بله چون من مراجعه نکردم اگر در این برمامه جدید این نسخه کافی که اخیرا 15-19 نسخه مقابله شده اگر این باشه خوبه، این, این مطلب رو، این رو داره بنزام مرهوم صاحب وسائل تعلیم گرفتی رو احمد برقی نوشته بر اوها ابن فضل نه احمد برقی از ابن فضل نه، بر اوها ابن فضل نه احمد اشعری نه احمد برقی. اگر عبارت اینطور باشه که شما کنیم مسافه کافی همه اینطور باشه، این اینه من چند بارم تا حالا در بحثایی وسائل زیاد گفتیم یه جهاریست وسائل استظاهار بکنه استظاهاراتش درستیست باطله ولیت یکیش هم نه مثلا استظاه هم مرحوم کلیمی تحلیقم آید بروجیه می کنیم تحلیق میگم بلاغه میگم وقتی واسطه را همسیت بکنیم بلاغه دیگه علاقه نفضا یا تحلیقم مرحوم کلیمی بعد تعلیقاً از ابن فضان نقل کرده برقاها ابن فزان. و من هون سال و سال زده به صدر حدیث صدر حدیث احمد برقی بوده تعلیق برداشته چستونده کرده احمد برقی این درست نیست نه تعلیقش به احمد اشعریز نه به احمد برقی. الان یه اگر نسخه این گروه باشه که ایشون خوندن این حدیث به این لحاظ معتبره تا عبدالله همون نصفیه اصم بسید مشکل چون اون نصفیه متبره لیکن عبدالله نصفیه نمیر بحث صادق علیه السلام مامل عبد این مسئله دیگری ایسا به ما نداره در دیگری که خب وقتم آشد حال این